آیا اون حرمت مردگان و درگذشتگان تا چه مدت ما باید ادامه بدیم البته ما باید بدانیم که اینها با زمان فرق میکنه یک زمانی که بشر در دوره شرک و بدپرستی و طبیعت پرستی و اینا زندگی میکرده روح مردگان تقریبا جای خدا بوده و از مردگان استعانت میکردن کمک میطلبیدند، هر وقتی گرفتار چیزی میشدن یا مجسمه مردگان را جلوه خودشون میگذاشتند یا عکس یه چیزی شبیه به این و شروع میکردن به درد دل کردن و حایات خودشون را از اون مرده میخواستن ولی این دوره مرد پرستی این گذشته و امروز بشر در دوره دیگری زندگی میکنه و باید متوجه بشیم که ما در هر دورهی حرمت مردگان به نسبت زمان و مکان و بالا رفتن ساعت فکر فعل کرده ولی عشو در این مورد هیچ دستوری نداده ولی یک کتابی داریم به نام وندی داد داد یعنی قانون یعنی وقتی اولین گروه زرتشتیان که حکومتی به وجود آوردن، آمدن برای اجرای کارهای دینی درگذشتگان، یک روزهایی یک مدتی برای حرمت مردگان نگه داشتن و اون در فصل دوازده وندیداد بند هشت اینجور میگه حرمت پدر و مادر تا شهست روز یعنی اگر پدرمون مرد یا مادرمون مرد ما تا دو ماه تقریبا باید حرمت او رو نگه داریم برای خواهر یا برادر سی روز زن و شوهر اگر زن زودتر مرد یا شوهر زودتر مرد اون یکی که زنده هست سه ماه باید براش حرمت نگه داره یعنی حتی تا سه ماه هم ازدواج نکنه فرزند زنی که شوهرش مرده تا سه ماه زودتر نمیتونه ازدواج بکنه برای که هنوز تو حرمت شوهرشه برای بامس و ممس یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ هر کدونی که مردن اون یکی پنجا روز باید حرمت نگرداره نوه دختر یا پسر یعنی پدر بزرگ یا مادر بزرگ اگر نوهش یا پسر یا دختر تا بیست و پنج روز حرمت داره حرمت امو و امه و دایی و خاله هر کدام جداگانه پونزده روز پسرامو و امه و پسر یا دختر دایی و خاله پنج روز. اینها وقتیه که اون وندیداد یعنی در زمان مادها اینو تعیین شده. و باید بدانیم که در مذهب زرتشتی سیاست از دین جداست. در بین این چهار مذهب توحیدی دو مذهب سیاست و دین آمی یکی مذهب یهود و دیگری مذهب اسلام برای که این دو پیغمبر زمانی در بین مردمانشون ظهور کردند که مردمانشون نه دین درستی داشتند و نه حکومتی از خودشون پس این دو پیغمبر مثل حضرت موسی و حضرت محمد هم به عنوان رسول از جانب پروردگار اصول دین آوردند، و هم به عنوان سلطان قوانین اجتماعی و سیاسی وضع کردن مثلا لباس باید چجور باشه مرده چجور باید کنی ازدواج باید چجور باشه زن تا چند تا زن میتونه بگیری اینها همه در این دو دین هست ولی در دو دین دیگر یعنی دین زرتشتی و دین مسیحی سیاست از دین جداست مثلا اشوزرتشت زمانی آمد که مملکت ایران متمدن بود قوانین لازمه زندگی اجتماعی وضع شده بود پادشاه ایران شاگشداست کیانی بود او پنجمین پادشاه سلسله کیانی بود تمام قوانین لازمه زندگی اجتماعی و سیاسی وضع شده بود وقتی دربار ایران بعد از مباحثه طولانی با ازشو دین را پذیرفت گفتن حالا ای زردوشت بیا ما میخوایم قانونی وز کنیم که مطابق مذهب توحیدی باشه زردوشت فرمود من نیامدم حکومت در حکومت ایجاد کنم یعنی نیامده بر علیه شاگشتاز کودتا کنه من آمدم راه بهتر زیستن را به شما یاد بدم حالا که میخواید قانون وعث کنید همین قانونی که الان وعث کردید و میگید براتون بسیار خوبه با دو میزان بسنجید و هر قانونی که با این دو میزان جوره موقتا بپذیرید. و اون دو میزان یکی میزان عقل و خرد و دیگری میزان توحید ولی بدانید که اصول دینه که نباید تغییر کنه اصول دینه که از جانب پروردگار ارده و باید مثل خود پروردگار ابدی و عزلی باشه ولی فروع دین یعنی راه رسیدن به اصل باید با زمان و مکان عوض بشه با تغییر زمان و مکان اصول عوض نمیشه ولی فروع دین باید عوض بشه با بالا رفتن سطح فکر باید عوض بشه همینطور مذهب مسیح میدونید مسیح هم زمانی متولد شد که کشور فلسطین اردن، لبنان، سوریه، ترکیه اینا همه دست امپراتوران روم بود مثلا ما یکی از شهرامون مولانا جلال الدین رومی این در ترکیه متولد شد ولی اون موقع هنوز جذب خاک روم حساب میشد و میگفتند جلالالدین رومی اونجا هم وقتی عیسی عدهای پیرو پیدا کرد گفتند ای عیسی اگر دوز را گرفتیم چندتا شلقش بزنیم عیسی فرمود کار قیصر را به قیصر واگذارید یعنی تنبیع کردن مجرمین بزهکاران اینا کار امپراتور رومه پس در دو دین سیاست و دین توهمه در دو دین سیاست از دین جداست پس در توش هیچ وقت نگفت حرمت مرده چه اندازه باید باشه این به احساسات بشری به تغییر فکر و محیط این باید عوض بشه ولی اون چ که گفتم این حرف تقریبا 2500 سال قبله. حالا امروزه باز هر فردی از خانواده نسبت به دیگران فرد داره. اینی که نزدیکترین به اون خانواده هست البته و ساعتاتش بیشتره. ولی اونی که از خانواده قدری دورتره لازم نیست که همون اندازه که، زمان گفتن حالا هم مراقب کنیم امیدواریم این در نظر داشته باشید و این گونه با تغییر زمان و مکان عوض میشه با بالا رفتن سطح فکر باید عوض بشه و اگر فروع دین را مثل اصول دین عبدی نگه داریم، اصول دین را هم خراب میکنه و دین عقب میفته دین کهنه میشه و باید اون وقت دست از این دین کشید و علت اینکه دین زرتوشت که نخستین پیام برای یک تا پرستی در ایران ظهور کرد و تا حالا باقی منده برای همینه که ما اصول دین را همیشه نگه میداریم ولی فروع دین میبینیم زمان جور دیگه بود زمان حقامنشان دین از سیاست جدا بود پادشاهان اعترام به تمام مذاهب میگذاشتن ولی خودشون زرتشتی بودن در زمان اشکانیان همینطور بود پس امیدواریم همیشه سعی کنید ببینید اصول دینمون چیه اون را همیشه نگهداری. ولی فروع دین بدونید با تغییر زمان و مکان باید عوض بشه با بالا رفتن سطح فکر باید عوض بشه و اگر فروع دین را هم مثل اصول دین خواستید ابدی کنید لطمهی به دین و اصول دین میخوره یکی از مذاهب ایران پیش از عشوذرتوشت مذهب زربانی بود همه کلمه زربانی در نماز جسمی هبین که مزدا می خونیم زربانه اکرنه زربانه درق و خدا ته ای این زربان یعنی روزگار یعنی دهر که بعدن به اصطلاح پیشانی اونچه نوشته شده بخت و شانس و اقبال و اینا هم در دنبال این عقیده به دهر و روزگار آمد و روزی این مذهب به قدری پیدا کرد که در بین ملل مشرک و طبیعت پرست این خدا از همه بالاتر تصور میشد و میگفتند روزگار نه اول داره نه آخر داره نه زاییده شده نه می میرد همیشه بوده و هست و خواهد بود اینها ذروان را یک خدای مؤنث تصور می‌کردند. برای که بشر اولیه باور نمیکرد که خدای مرد بتونه مخلوق ایجاد کنه. می گفت خدا باید حتما زن باشه که ایجاد نسل بکنه که بچه بیاره. که مردمان اولیه که در غار کوه زندگی میکردند می, می کوه مادر اونهای و اینها در رحم مادر چون در غار کوه زندگی میکردند می, می ما در رحم مادر داریم زندگی میکنیم و کوه را مادر خودشون تصور میکردند حالا این زربان هم تصور میکردند، یک خدای مهنسه بعدا از این زروان دو بچه به وجود آمد یکی مبدع خیر و یکی مبدع شر و پس از زروان مبدع خیر و شر به وجود آمد و در آغاز این مبدع خیر و شر اسمی نداشت بعضی ها که ایران قدیم اون مبدع خیر را اهورامزدا و مبدع شهر را احریمن می‌دونیم. در صورتی که این کلمه احورامزده و اهریمن را زمان اشوزرتوشت به وجود آوردن و قبل از زمان اشوزرتوشت نه اسمی از اهورامزدا بود نه اسمی از احریمن حالا این دو غلو، یعنی مبدع خیر و شر در زمان اشور در توشتم، این زروانیها ها میگفتن اینا ها اینها دو گوهر همزاد هستند و یک نوع صنویت به وجود آورده بودند و میگفتند مخلوقات دنیا تحت فرمان دو خدای بزرگ هستند یکی خدای خیر یکی خدای شر ولی زمانی که در توشت به پیامبری برگزیده شد فرمود آن دو گوهر همزادی که در آغاز در اندیشه آدمی ظهور کردند یکی منتسب به سپنتا مینو یعنی اون چه که به نظر ما نیک و پاک تصور میشه سپنتا یعنی سپید و پاک و مقدس مینو یعنی منش در انگلیسی مایند از همین کلمه از هر دو ریشه آریایی داره پس سپنتا مینو یعنی اون چه اندیشه آدم نیک تصور کند و اون چه که اندیشه آدم بد تصور کند مربوط به انگره مینو انگره یعنی بد و زشت و ناپاک همون انگری انگلیسی هم از این کلمه است. انگری یعنی خشم و غذاب. یعنی بد و زشت پس انگره یعنی اون چه که منش آدمی بد بدتصور میکنه و انگره یا بعدا اهریمن شد در برابر سپنتا منه نه در برابر اهورامزدا و انگره را خدا نیافریده انگره مینو زاده فکر ماست برای اینکه وقتی انسان به دنیا نگاه میکنه دو چیز متضاد در نظرش ظاهر میشه بعضی چیزها خوب و نیک و پسندیده است مثل میوه های فراوان، نعمت های زیاد کوههای های سرسبز و خورن رودها و چشمه پرآب، خورشید تابان، مای، درخشان و مانند ایونا همه به نظرش خوبه ولی اون که بد به نظرش میاد میشه میکروب، ویروس، قارچای سمی، حشرات موزیه حیوانات درنده زلزله آتشقشان و هزاران آفات دیگر ارزی و سماوی هم در برابر چشم آدم ظاهر میشه حالا چرا خدا اینها را آفریده خدا که میگیم بخشاینده و بخشایشگر و مهربانه ولی او با عقل کل خودش همه چیزی که ما اعم از خیر یا شرم می دونیم، او آفریده و عقل ما در برابر عقل پروردگار هیچه ما نمیتونیم بفهمیم چرا خدا این چیزهایی که به نظر ما بده آفریده ولی وقتی که انسان با عقل و خرد به اسرار آفرینش و رموز خلقت تعمق و تفکر و پژوهش و پویش و جویش کنه میفهمه که به قول مولانا جلال الدین رومی که واقعا یکی از دانشمندان دین زرتشتی بوده که بسیاری از حقایق را در مصنوی خودش ظاهر کرده میگه پس بد مطلق نباشد در جهان بد به نسبت باشد این را هم بدان پس بد مطلق نباشد در جهان یعنی هر چیزی که ما میدونیم به نسبتش اگر باشه خوبه اگر از نسبت خارج شد بده مثلا باران وقتی کم بباره خیلی خوبه وقتی از نسبتش خارج شد زیاد بباره شیل بنیان کن میشه که هزاران خانه و سدها جانها را ادا میکنه پس باران در نفس خودش نمیتونیم بگیم خیر نشر خیر وقتیه که به نسبت بباره ولی از نسبت خارج شد میشه شر آفتاب زمستون میگیم آفتاب خوبه تابستون میگیم بده برای که از نسبتش خارج شده ملتی که در کشور گرم زندگی میکنن میگن خداوند در جهنم گناهکاران را در آتش میدازه برای که میبینن آتش پیششون یک چیزه یت کننده است. ولی آریی های قدیم که در سرزمین سرد زندگی میکردیم معتقد بودند که روح گناهکاران را خداوند میذاره لای یخ و برق. و بر وقتی به کتاب اردای نامه که رای به بهشت و دوزخ و همیستگان اینا صحبت میکنه هم از جهنم، اسلام و هم از جهنم آریایی هر دو ذکر میکنه بعضی از گناهکاران را خدا را آتش میدازه بعضی را میذاره لا یه و برد. و این نشون میده که این اردای نامه بعد از اسلام نوشته شده و این روایاتی که میگن در زمان ساسانیان بوده و همه از این گفتارش میشه فهمید که نه این زمانی بوده که حقیده دین اسلام و دین زرتشتی آمیخته شده و یک نوع تشویش دینی به وجود آمده بود که عردای هم جهنم اسلام را گفت قبول کنید و هم جهنم آریایی را حالا پس ما وقتی خوب فکر می کنیم می‌بینیم که خداوند اون که به نظر ما شره برای کمک به فهم فایده خیل آفریده مثلا ما وقتی گرسنه هستیم از خوردن غذا لذت می بریم ولی نان خشک جوین باشه اگر همش بگن بشین بخور انسان از خوردن آیز میشه پیشش وبال میشه پس لذت غذا وقتیه که گرسنگی در کار باشه و ما میگیم گرسنگی بده سیری خوبه ولی منسبتشه ما موقعی که خسته و کوفته هستیم از خواب و استراحت لذت میبریم ولی اگر دو ما در بیمارستان رو تخت خواب بیمارستان بخوابیم دعا میکنیم که کی از این تخت خواب آزاد بشین پس خوابیدن روی تخت و خواب لذت نیست لذت وقتی داره که خسته و کوفته بشه اینجاست که باز شادروان مولانا جلال الدین رومی میگه از کرم دان آنچه می آزارادت یعنی هرچه تو را اذیت میکنه از کرم و لطف خداست از کرم دان اون چه می تا به تخت معرفت بنشاندد تا را به فکر واداره رای چاره پیدا کنی مثلا وقتی انسان در میان این دنیایی که مخلوطی از خیر و شره زندگی میکنه مریض میشه اگر بگیم این مریض شدن نعمت پروردگاره و به قول یکی از عرفا میگه اگر زکو فروغ یا و نه آرفه است که از راه سنگ برخیزد بگیم این سنگ را خدا خواسته و چون خدا خواسته ما از جلو این سنگ نباید باشیم. در فرهنگ ما میگه این غلطه و انسان وقتی ناخوش شد نگفت این ناخوشی خواست خداست آمد عقل به کار برد دکتر به وجود آورد دوا درست کردیم و نه فقط برای خود انسان بلکه برای حیوانات و گیاه ها. این چیه؟ این غلبه بر شر به کمک عقل و بسیاری از چیزها ما در صدد، گفش بر مثلا موقع زلزله آتش فشان الان جاهایی که زلزله شده بهشون توصیه میشه که هاتون طوری بسازید که در برابر زلزله مسئونیت داشته باشه هیچ وقت در مسیل رودخانه خونه نسازید ممکنه سیل بیاد ویران کنه پس این پیشرفت فکر که تا حال بشر به اون موفق شده و حالا میخواد بره سیارات را هم مسخر کنه همه برای به انداختن عقل و فکره اگر خداوند اون چرا که میخواستیم برامون تییه میشد ما مثل یک تیک سنگ میفتادیم تا آخر عمر و از به این میرفتیم و هیچکونه پیشرفتی در عالم انسانیت به وجود نمی آمد پس از کرم آنچه می آزاردد تا به تخت معرفت بنشاندد و بنابرای توصیه توش زمانی رستاخیز پیش بیاد و سراسر دنیا را نیکی و خوبی فرا می که ما با کمک عقل و خرد خودمون بر شروع طبیعت بر بدیهای خلقت غلبه پیدا کنیم و بد را تبدیل به خوب کنیم بدی از بین نمیره این دو نیروی پروردگاره ولی ما میتونیم بدی را از استفاده خیر بکنیم در گذشته میگفتیم زنبور عصل و کرم ابریشن بدن اینها را میکشتیم ولی حالا داریم اینها را غذا میدیم پرورش میدیم و ازشون استفاده میکنیم و قیامت وقتی فراهم میشه که اون چه که ما در فکرمون جزو بدی بوده تبدیل کنیم به خیر و وظیفه ما در این جهان طرفداری از خیر و از بین بردن شر و وقتی این کار را کردیم سراسر دنیا را نیکی و خوبی فرا می و این است ام امید آینده همه ادیان موحد و امیدوارین با کمک عقلمون بتونیم بر تمام بدیهایی که به نظر ما هست از بین ببریم یا اونها را تبدیل به خیر کنیم در پایان و به که خانم ها و آقایان اطلاع دارید سال ایرانی به دو بخش شش ماه تقسیم می شده. شش ماه اول با نام فروردین که آغاز جشن نوروز بوده و شش ماه دوم به نام جشن مهرگان برگزار میشده و پایان سال هم یک جشنی بوده به نام جشن سده که امروز به نام چهارشنبه سوری معروفه از این جهت نیاکان ما مهر را وسط سال قرار دادند برای که کلمه مهر به معنی عدل و داد و راستی و درستی و مهر و محبت و در برابر ماه حمل و سور و جوزا مهر درست برابر میشد با ماه میزان و میزان یعنی ترازو پس مهر علامت دادگستری و عدل و داد هم خوانده می شده و می دونید مهر یا میترا یکی از ایزدان آریایی قدیم بوده که در دین زرتشتی به اهمیتی که این ملت براش شاهل بودن جد یکی از فرشتگان دین زرتشتی در آمد و همانطوری که ماه مر وسط ساله روز مهر هم وسط ماه مره که این که روز شنزدهم هم همه به نام مهر خوانده می شده. که نماینده عدل و داد و اعتدال و این هاست. میر دارای علایم بسیاری بوده در قدیم یکی از این علائمش ترازو است و آریایی اولین ملتی بودند که ترازو را نشانه عدل و داد دانستند و هر وقت میخواستند نماینده یا نشانی برای عدل و داد بکشند عکس ترازو را میکشیدند و الان هم در تمام دنیا علامت دادگستری همون علامتی است که آریاهای قدیم میکشیدند یعنی ترازو در تاریخ ما میخوانیم که در زمانی هوشنگ که هنوز آریها در خواهر کو زندگی میکردیم برای که نیاکان ما وقتی میخواستند تاریخ قوم ها را بنویسند شروع کردند از قارنشینی غارنشینی ها و از روی این خداینامک پهلوی و بندهش و دیگر کتابهای پهلوی که شاهدروان فردوسی از روی اون با کمال صداقت تجرمه کرده میگه نخستین خدیبی که کشور گشود سر پادشاهان کیومه است بود سر تخت و بختش برامزد کوه، یعنی در کوه زندگی میکردیم پلنگین پوشید خود با گروه حالا هنوز در اون زمان آتش کشف نشده بود زندگی در این غارهای کو در شب تاریک اون هم شبهای اون روزگارهای توحش مراتب خطرناکتر سهمناکتر از شبهای این روز هاست. سرمایه تو غار کوه هم البته بیشتر از جای دیگر است هر قدر سردشون میشد میرفتن کنج غار و گاهی گرفتار اون گودار ها میافتادن می پایین خطرناک پس هوشنگ نوه کیومرس اولین کسی بود که آتش را کشف کرد کشف آتش هم به طوری که نیاکان ما میگن یه چیز عجیب و غریبی نبوده هوشنگ و اطرافیانش در کوه میبذاشتن اونم وسط سرمای زمستان که ما جشن سده میگیریم یک مار پیدا میشه هوشنگ یک سنگ پرت میکنه به طرف مار سنگ به مار نمیخوره بلکه میخوره به یک سنگ دیگه جرقه بیرو میده و یه دفعه این علف های اطراف پوشنگ و اطرافیانش آتش می گیرن و یک دفعه می بینن این تو سرمای زمستان گرم شدن هوا عوض شد و نزدیک غروبم بود هوا روشنتر شد. اینا گفتن پس این عدب عجب نعمتی است. این را روی تخت سنگ گذاشتن و بردن ببرن تو غار ولی مردم ترسیدن گفتن نه نه اینا نه ما ترسیم ازش بیرون غار نگه داشتن دو نفر معمول شدن که شب و روز هیزان بگذارن روش خاموش نشه چون روزهای اول کبریت نبود و سال آتش زنه نبود اون شبی که در غار آتش روشن شد دیدن هیچ حیوان درنده در ای وارد غار نشد که مردم را بخوره بچه های مردم را برداره ببره زمنا هیچ نوع حشرات موزیه که در قدیمم من خیلی بیشتر بود مار و اغرب و سوسمارها و انوا و اقشام هشرات اون شب از دیدن این آتش میترسیدن و هیچ کدوم وارد غار نشدند اینها گفتند گفتن عجب این آتش پس نگهبان خانه و زندگیه و همیشه دعا میکردن حتی بعد از اینکه که به اصطلاح استفاده از آتش معمول شد همیشه دعا میکردن که اینشالله اجاغ روشن باشه چراغ خونه روشن باشه اجاغ استعب باشه و این اصطلاح از همون قدیمه و بعد از اینکه انسان استفاده از آتش را یاد گرفت کبریت نبود و اگر یک کسی میخواستند دهی آبادی بسازند اول در وسط آتش کده میساختند دورش خونه ها و مغازه ها میساختند و صبح که میشد بیرفتن می از آتش کده آتش میوردن خونه اجا روشن میکردن تنور روشن میکردن کونه روشن میکبردن روشن میکردن و امور مردم میگذشت. در زمان جمشید خورشید شد بزرگترین خدا در زمان هوشنگ گفتند بین خدایان چون آریه های قدیم موحد نبودند طبیعت پرست بودند مشرک بودند خدایان زیادی داشتند ولی گفتند این آتش خدا خدای خدایان حساب می شده زیرا هم مرئی بود هم محسوس بود هم استفادهش ازش می‌فرمودند ولی زمان جمشید خورشید اهمیت پیدا کرد و گفتند این آتش نیست که باعث دوام و بقای زندگی گیاه و حیوان و انسان میشه بلکه این خورشیده و حتی در شاهنامه است که لهراس پدر گشتاد پیش از اینکه دین زرتشتی را بگیره تای و تخت را داد به پسرش و معتکف شد در آتشکده بلخ و میگه نیایش همی کرد خورشید را چنان چون که بود راه جمشید را پس نشون میده جمشید آین خورشید پرستی روای داد در زمان فریدون سطح فکر دقیقی بالاتر رفت و ادهی گفتن این خورشید نیست که باعث دوام و بقای حیات گیاه و حیوان و انسانه بلکه این نور خورشیده. و نور خورشید را به نام مر خواندند و در اون یشتی که قبل از در توشت آریه ها درست کرده بودن در زمان جمشید خورشید یشت درست شد و در زمان فریدون مر یشت درست شد و گفتند این قرص خورشید نیست بلکه نور خورشیده که باعث دوام بقای حیات میشه و این را گفتند میر و مر در همین مهریشت میگه مر را میستاییم که پیش از برآمدن آفتاب از کو تلو میکند و همین موقعی که اولین گاه نماز در زرتشتیانه که نماز اوشهنه اوشه یعنی نور هن یعنی سرزدن که درست با عربی میشه فجر نور طلو فجر نور و همون موقعی که ما گاه اوشهن میخونیم میبینیم بعدا در اسلامم اولین وعده نماز همون نماز صبح که سهرگاه خونده میشه یک ساعت و نیم تقریبا قبل از طلوع آفتاب از آن صبح خونده میشه اجرا میشه پس زمان فریدون میر پرستی شد مهر کم کم دارای معانی زیادی شد و طوری که کردم باز اسمش وسط سال و وسط ماه اسم مهر می و جشن بزرگی برگزار می علائم علایم مهر هم در قدیم متعدد بود یکی از علائم مهر حلقه مهره زمانی که در بگن ایرانی ها نوشتن و خوندن و چاپ و کتاب و کاغذ و اینها مد نشده بود اگر یک پادشاه با پادشاه دیگه میخواستن قول و قراری بدن یک حلقه بوده که در کتیبه تاق بستان و تاسع جمشید اینا هست که یک طرف یک پادشاه در دست میگرفت و یک طرف یک طرف دیگر حلقه و این را بهش میگفتن حلقه میر. و عهد و پیمان را با این می و به قدری در پیمان و عهد متحد بودند که سرشون از بین می ولی عهد و پیمان خود را نمی شکستن. با وجودی که هیچ نوع نوشته خونده چیدی در وسط نبود همون طرف حلقه مر را که در دست می گرفتند و غور و قرار می این تا آخر عمرشون اجرا میکردن که یکی از شوهرهای ما میگه دل حلقه میر کرده در گوش یک نکته نمیکند فراموش بعدا این حلقه شد حلقه نامزدی حلقه عروسی و حتی اینهایی که قدیم برده و بنده و غلام میگرفتند این حلقه به گوش برده و غلام میکردن و می گفتند این حلقه علامت اینه که تو باید نسبت به من که ارباب هستم باید راستگو و درستکار باشی و عهد و پیمانی که با من نگه ناداری بعدا این حلقه تبدیل شد به حلقه کردن دست و ما الان خیال میکنیم این دست دادن به هم دیگر یک آثاری از این منش اروپایی هاست در صورتی که نه ما در قدیم میگه که دست پیمان به هر کسی میدیم در سعدی یک شعری میگه ای بسا ابلیس آدم که هست پس به هر دستی نشاید داد دست پس دست عهد و پیمان به هر کسی نباید داد وقتی میدونه این شخص قول و قرارش خودشو نگ میدارره حاضر نشو با این قرار و مداری ببندید. پس این حلقه تبدیل شد به حلقه نامزدی حلقه عروسی بعدا دست حلقه کردن و در قدیم هم به طوری که میدانید بعد از اینکه دفتر اسناد رسمی و اینها مرسوم شد در ایران بعد از اینکه قول و قراری می نوشتن و امضااب میکردن دست به هم میدادند و در عروسی های ما هم میبایستی که پدر عروس کاری که موقعی که عقد کردن دست پیمان بده به دامادش و میگیم دستی ها پیمانی ها که هنوزم هست پس یکی از علائم مهر همون حلقه مهره یکی دیگر از علائم مهر ترازوه ارز کردم چون ماه مهر مصادف می شد با ماه میزان پس میزان یعنی ترازو و می گفتیم مهر دار یعنی می گفتیم مهر بعد از اینکه انسان می میره روح در درگاه پروردگار در دادگاه پروردگار حاضر می شه مهر در دست داره و گناه و این شخص را میگذره در کفه ترازو اگر گناه بیشتر شد میفرستن یک جهنم ثواب بیشتر شد بهش مساوی شد همیستگان یعنی برزخ قرار پس این علامت مهر و محبت شد و باز مهر شد داور بی بیورچشم راس راست داور یعنی داور راست و درست یک قاضیه که راست راست حکم میده راست راست داور تیز تیز داور یعنی تند تندوست با سرعت انجام میگیره یه دو سال پرونده نگه نمیدارن که حکمش صادر کنم بعد تون تان صادر میشه پس این نماینده و داد همون مهر شد باز یکی دیگه از علامت مر گل آفتاب گردانه چون گل آفتاب گردون ما معرفه که میگیم گل آفتاب پرست و عجیبه که این گل همیشه روش به طرف آفتابه که از قدیم نیاکان ما خاصیت این را درک کرده بودن و گل آفتاب پرست یا آفتابگردون می‌خواندند و در تاغ بستان اون اکس کشیده شده و زیر پاش این گل آفتابگردونه که اروپاییان در اول خیال میکردن این عکس اورام از داست ولی بعدا اروپاییان از اون جایی که اون مهرپرستی در اروپا و اینها گسترده شده بود فهمیدن که این گل آفتابگردون یکی از علایم مهره و وقتی دیدن زیر پای این مهر گل آفتاب گردونه گفتن نه پس این احورا نیست و این مهره و همیشه به مهر در موقع پیمان بستن هم چی میکردند کردن؟ یاد میکردند که مهر زامن کارهای ماست و اگر ما این عهد و پیمانی که بستین اجرا نکردین مهر خودش قضاوت میکنه و اون جزایی که باید بده به ما خواهد داد باز یکی دیگر علامت میر این پنجه خورشیده و این را قرص خرشید و این نورش را نور میر میدونستن که این هم اگر همکیشان دردشتی ما به خاطر داشته باشن در موقعی که سال مردگان را میخوندیم این پنجه در گل سفیل گل گیوه که خیس می کردیم می و می دادیم به در و دیوار و این علامت مهره بعداً می بینیم نیاکان ما وقتی که به اسلام رو آوردند، آوردن باز این پنجه علامت آل پنجتن خوانده شده و در بر روی کتل و علم ها در های محرم می بینیم عکس دست پنجه کشیده شده و یکی دیگه علامت مهر این گردونه مهره چون اون زمان خیال میکردن خورشید حرکت میکنه از مشرق میره به مغرب حالا بر روی گردونه بوده که چهار اون رو میکشیدن و چهار از علامت اون چهار رنگی به خصوصیه که بعدا نیاکانه ما فهمیدن نور خوشید هفت رنگه ولی چهار تاش رنگ اصلیه بقیه امتزاج دو نوره و این تیری که وسط چرخایه بعدا به نام علامت صلیب شکسته معروف شد و این علامت صلیب شکسته شد آرم آریه ها که بعدا می بینیم شد صلیب علامت مسیح و حتی در زمان هیتلر هم این علامت را علامت آریایی بر علیه قوم یهود بکار بردن و این علامت باز همون گردونه علامت گردونه مهره پس در عوستا هر وقت اسم مرد میاد بلافاصله اسم زن هم دنبالش میاد مثلا میگه که نرام چا عشاه و یزمیده بر فروهر پاک مردان درود باد نایری نا نام چا عشاه و فروشیم یزمیده بر روهر پاک زنان پارسا درود با. همی همینطور در ینگی هاتام میگوید اهورا مزدا ستایش مردمان را که بدون روی و ریا باشد آگهی دارد و بر چنین مردان و زنانی که ستایششون بدون روی و ریا باشد درود میفرستد، برکت می باز در احمای ریشت هم خرنشه خوانیم تنو دروتاتم احمای تنو وزوارم احمای ایشتیم پروش خاطرم احمای آسنام چیت فرزنتیم حالا این منظور آسنام چت فرزنتیم یعنی هر درتشتی بعد از توازای طول عمر و صحت جسم و روح میکند آرزومند است که او را برخوردار کنه از آسنام چت فرزنتیم یعنی فرزندان نامور نامی بدون اینکه بگه دختر یا پسر ولی می بینیم بعضی ملل که زن بینشون اون ارزش و اهمیت مرد نداشت حتی در اون روایات تاریخی آغاز خلقت که دانشمندانشون درباره خلقت فرضیه های کردن میگن خداوند اول فقط مرد را آفرید بعد وقتی مرد اظهار دلتنگی کرد از پروردگار پروردگار آدم را به خواب عمیق پرو برد دنده چپش را در برد گوش آویزون کرد و کردش هوا پس برای بعضی ملل که تمدن بسیار قدیمی نداشتند فقط خداوند مرد را میافرینه و زن را از بخشی از وجود مرد به وجود میاره ولی در فرهنگ ما ایرانی ها که فرهنگ بسیار قدیمی داریم میگوید اهورا مزدا زن و مرد را که به نام مشیع و مشیانی باشه مانند دو شاخه ریواز در بغل هم از یک ریشه بیافرین حالا زن و مرد از یک ریشه ولی باز در بغل هم آفرید این هم یک فلسفه خلقتی داره یعنی زن و مرد بی وجود یک دیگر نمیتونن زندگی کنند که ما اینکه که تولید نسل به تنهایی نه برای مرد ممکنه نه برای زن پس آمیزش زن و مرد را از همون روز اول خدا قرار داده. و میگه وقتی که اهورا مزدا مشیه و مشیانی را آفرید از یک ریشه بعد به اینها گفت شما بروید فرزندان نیک و پارسا به وجود بیارید و وظیفه شما مبارزه با شر و طرفداری از خیره. وقتی که به تاریخ زمین شناسی و زیست شناسی میکنیم میگیم در دوران اولیه قوم آریا یا هر قوم متمدنی که هنوز در غارهای کو زندگی میکردیم خانه مال زن بوده بچه ها به نام زن زندگی میکردند. و این دوره را دوره مادرشاهی شاهی و مردها همیشه در بیابان دنبال شکار بودند و وزیفه فشون فقط آوردن گوشت شکار برای زن و بچه بود حالا باز از اون جایی که مردها هنوز موی بدنمون بیشتر از زنه برای که غرنها زندگی مردها همینجور، لخت و اون تو بیابونها دنبال گله های شکال میگشتیم. ولی زن چون در غارهای کو در منزل ساکن داشتن لطیفتر بار اومدن و زن بود که برای اولین بار کشاورزی را به وجود آورد برای که زنها با بچه ها وقتی در دامن کو می رفتن، اون دانه های حبوبات و غلاتی که می بخورن اینها رو جمع می کردن و دوباره می کاشتن یا درختهایی که میوه داشت یا ازش تونستن استفاده کنند از برگاش اینها یاد میاد می میگرفتند و دوباره می کاشتن و زن می شد. پس اولین کشاورز در دنیا زن بودند. اولین دامپرور زن بودند یعنی زن و بچه ها که به پایین کوه می رفتند آب بردارند وقتی بوز کوهی، گوسفند کوهی، آهو چیزهای دیگر را میدیدند و بچه هاشون دنبالشون می و این بچه های اینا را می گرفتند می بردند در غار کم کم بزرگ می و تربیت می کردند پس باز اولین دامپرور هم زن بودند اولین سفالگر با زن بودند که ظروف را از خاک درست میکردند این دوره را بهش دوره مادرشاهی. ولی وقتی که انسان به دشت رفت و برای دفاع از خانمانش میباستیم مدام به جنگه برای که مردمان قدیم حتی آدمیان هم از همدیگر دوری میکردیم دشمن هم بودیم سعی میکردیم مال هم بردارن فرزندان هم را برو باین. پس اینجا دفاع با مرد بود و از اون جایی که مردها نیروی جسمانیشون بیش از زنه این بود که حکومت پدرشاهی شروع شد و همه طور میبینیم آریها وقتی که حتی نیاکانمون میخواستن تاریخ قوم آریایی را بنویسند شروع کردند به دوره غارنشینی آریا همونطوری که فردوسی از قول خدای نامه پهلوی و بندهش میگه نخستین خدیبی که کشور گشود سر پادشاهان که یومعز بود سر تخت و بختش برآمد کوه پالنگینه پوشید خود با گروه حتی نژاد ها وقتی که میخواستیم تاریخ ما را بنویسند نیاکان ما شروع کردند به دوره غارنشینی آریه‌ها همون طوری که اروپاییانم دوره نوسنگی و پارین سنگی و اینها تاریخ را شو اینجور شروع می‌کنند طبق دستور نیاکانمون در قدیم حالا وقتی که توش به پیامبری برگزیده شد زن در ایران مقام بسیار والایی داشت و می بینیم تعداد زیادی از زنان نامدار که حتی از سواری و تیراندازی و شمشیرزنی و دفاع از کشور همون طوری که الان هم لور و کرد و بروچ و اینها در موقعی که دشمن حمله می‌کرد چه زن و چه مرد تفنگ دست می گرفتن و دفاع میکردن اون زمانم وقتی که دشمن حمله میکرد فرقی نداشت چه زن و چه مرد میبایسطه شمشیر دست بگیره و بره برای دفاع مرضوبوم خودش و میبینیم پهلوانان معروفی مثل بانوگوشسف دختر رستم همینطور گردیه گردآفرید و به از پهلوانها ها حتی زن و میبینیم زندگی زن هم در خانواده مرد زرتشتی کاملا آبرومندانه زندگی میکرد مرد اسمش نمان و پیتی یعنی منپت یعنی کتخدای خونه و زن به نام نمان و پتنی یعنی کتبانوی خانه هیچ وقت زن در خانواده اشیر مرد نبوده بلکه همیشه مرد خدای خانه و زن کتبانوی خانه بود و حتی وقتی که عقد ازدواج برگزار میکردیم هنوزم که رسمه یک قیچی سر سفره گوا میگذاریم و فلسفه اون قیچی اینه که میگیم شما دو نفر که امروز مراسم عقده زباج برگزار کردید مثل این دو شاخه قیچی هستید اگر میخوایید برش در زندگی خوب ایجاد کنید باید هم فکری، با هم فکری و همدلی یکی دیگر کار را پیش ببرید مثل دو تیغه با هم کار کنه و اگر خواستید تنها زندگی خونه را اداره کنید مثل یک تیغه قیچییه که برش ایجاد نمیکنه و این سرمشق زندگی یک زن و شوهر در روز اول طبق مذهب تعیین میکرد اینه که البته درباره زن در ایران باستان مقالات بسیار زیادی نوشته شهرتو مقام عالی زن در تاریخ ایران باستان بسیار ذکره که امروز باعث در دسر حضار محترم پرام نمی کنم.